کبوتر صبر روزی بود و روزگاری بود یک جفت کبوتر بودند که در ایام نوروز همسر و همخانه شده بودند و در گوشه کشتزاری در پای درخت گلی خانه ساخته و به خوبی زندگی می کردند در ماه های بهار که بارندگی زیاد است یک روز کبوتر ماده گفت این خانه خیلی مرتوب است و باید جای بهتری پیدا کنیم کبوتر نر گفت حالا تابستان در پیش است و هوا رو به خشکی میرود ساختن لانه ای به این بزرگی که پشت آن هم انباری دارد مشکل است باری همانجا ماندند و از اول تابستان که گندم و برنج و حبوبات فراوان بود هر روز غذای خودشان را در صحرا می‌خوردند مقداری هم به خانه می‌آوردند و برای زمستان ذخیره می‌کردند تا اینکه انبارشان از دانه‌های نمدار و برنج‌های تازه لبریز شد آن وقت خوشحال شدند و با هم گفتند که امسال زمستان از داشتن خوراک راحت خواهیم بود چندی گذشت و دیگر دانه های ذخیره را نگاه نکرده بودند تا اینکه تابستان هم به پایان رسید و دانه در صحرا کمتر شد و چند روز کبوتر ماده که برای پرواز ناتوان بود در خانه می ماند و کبوتر نر به صحراهای دوردست می رفت و مقداری هم دانه برای جفتش میآورد. روزی که اولین بارندگی پاییزی شروع شد و نتوانستند به صحرا بروند به یاد دانه های ذخیره افتادند و این دانه ها که بر اثر گرمای تابستان خوب خشک شده بود از آنچه بیش از آن بود کمتر نشان میداد کبوتر نر وقتی دید انبار مثل سابق لبریز نیست جفت خود را سرزنش کرد و گفت بی فکری و پرخوری تو را ببین ما این دانه ها را برای فصل زمستان ذخیره کرده بودیم که وقتی برف میبارد و در صحرا دانه پیدا نمی شود گرستنه نمانیم ولی تو در این چند روز که در خانه بودی نیمی از دانه های را خورده ای و فردای زمستان و سرما و یخبندان را فراموش کرده کبوتر ماده جواب داد دانه ها را من نخوردم و نمیدانم چه شده کبوتر نرگفت تو این جواب را میدهی ولی دانه ها خورده شده و گرنه دانه ها که پروبال نداشتند که پرواز کنند و بروند کبوتر ماده که خودش هم از کم شدن دانه ها ترجب میکرد قسم ها یاد کرد که من از آن روزی که انبار ذخیره پر بود تا حالا حتی به آن نگاه هم نکردهام چه رسد به اینکه خورده باشم تازه خود من هم از کم شدن آنها تعجب می کنم حالا بی خود اوقات خودت را تلف نکن و سب کن تا اینها که باقی مانده است بخوریم شاید زمین انبار تر رفته باشد شاید سوراخ موش پیدا شده باشد و شاید کسی دیگر برده باشد در هر حال در قضاوت عجله نباید کرد کبوتر نر گفت خوبه خوبه لازم نیست من را نصیحت کنی که در قضاوت عجله نکن. من این حرفها سرم نمی میدانم که در اینجا جز من و تو کسی رفته آمد نداشته. اگر تو دانه نخورده ای باید راستش را بگویی که دانه ها کجا رفته؟ خلاصه اگر چیزی می دانی که بعد میخواهی بگویی همین حالا بگو. اگر هم نه که هر چه دیدی از خودت دیدی. کبوتر ماده که چیزی نمیدانست شروع به گریه کرده و قسم خورد و گفت. من دانه ها را نخوردهام و دست به آنها نزدادم و نمیدانم چطور شده و باید صبر کرد تا حقیقت معلوم شود. آغوبت کارشان به دعوار رسید و کبوتر نر که خیلی عصبانی شده بود جفت خود را از لانه بیرون کرد. او هم از آنجا پرواز کرد و گفت: تهمت بیجا به من زدی و در قضاوت عجله کردی. باشد تا روزی پشیمان شوی که سودی نداشته باشد. و رفت که به جایی پناه ببرد و از غذا در صحرا به هوای دانه در دام افتاد و گرفتار شکارچیان شد کبوتر نرهم تنها در خانه ماند و خوشحال بود که فریب نخورده و دروغوی و خیانت جفت خود را فهمیده است اما چند روز که گذشت چون هوا بارانی بود و آثار رطوبت از در و دیوار ظاهر شد دانه های گندم و برنج هم دوباره نم کشید و دراشت شد و به اندازه روز اول که انبار پر بود لبریز شد. آن وقت کبتر کم صبر فهمید که درباره جفت بیگناه خود چه ظلمی می کرده که حرفهای او را دروغ دانسته و پشیمان شد که چرا مدتی صبر نکرده و در قضاوت عجله کرده است. اما پشیمانی سودی نداشت. و گناه بدبخت شدن کبوتر ماده هم به گردن او ماند و تا آخر عمر از بی صبری و عجلهی که کرده بود قمگین بود Thank <laughs> you.